مشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوگد. دانا چو تبلگ عطار است خاموش و هنرنمای و نادان چو تبل قاضی بلند آواز و میان توهی. آلمان در میان جاهل را مثلی گفتند صدیقان شاهدی در میان کوران است. مصحفی در سراغ زندیقان